به پاس زبان مادری دوبله انیمیشن آن سوی پرچین این بار به زبان شیرین گیلکی کاری از دوبلوران تماشاخانه هامون مدیر دوبلاج امین رضامند ده e. Ha. Hı. Hı. Girdi. Girdi. <Çanı> Şuna <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oh oh ah Wahlson huh I don't know. her şeye iki lazım derim fakat چیزene iki lazım derim Hey, Tom, <laughs> ده که با امایی میخورده خشله نبوده زینی شون دنی که چی بلاییتی سر اولم آرژه این مر مجبوره کنی بکشم تره نه نه من فقط ایست بیشاریم که خیلیم این خانواده سره کنم. تو که خانواده نرهی؟ این منظر خانوادی ای یه نفره بود آه. اه بس بس اه بدین ان هنوز غاهر میانه پس در واقع دو زین نباسته درسته؟ نه, نه. میشه میشه مامان. نزدیک بیار. زیادی نزدیک نیست. برو کنم تر. بس بس من تنها مامبا کردنم. آها اگه مرا بخوری خودت کار زیاده بیه ولی من تنم مامبا کردنم. می از داشته. گرم است داره ورم آبی کل من چی؟ او بی لحوه را سم آورم بعد آبی بابا آهان و همه ایمه چپسان من عاشق چپسم چپس اونقدر قدر خوشمزدیک اگر چی بخوری بازم کمی اتاسفانه بله بدین چیگم برار من ایتا ساک پیکنیکی و پرو سایز خانواده تره بارم مگه اونم نه آهام براه اه. خیلی خوب آجی تی خوب تیکو شبازه کن من شم وقتی ماه کامل ببه من بریزم و بهتره که همه چی برگرده به هنوز اول فهمستی من که به فقط یک هفته نی بکی خواه یک هفته صبح شم چون بار کارگار گیرم باشد بدینیم چی کنی فقط امیدوارم فکر فرار به تیکوی کله نزنه چون اون وقتی که نشینم تیستر تا تیکوزه بزنه بیرون <تصفح> باشه بر ارجان جا به جا کنم تره مرا داری غم نری شک نکن افتی دیگه به همی اکالا خنده کدن داریم آه آها آه وای مومن çadır du avukune çadır bir sar talep ide o bide, bide. mi işte mi Jingle jingle jingle jingle Hey, hey, hey! He is there. I can't insert. I'm falling in love. a beauty. یا ان دیگه فقط 274 روز به ونست از زمستان. همین هست برای خواب تو باشه. آها یالا. صبح بخیر. صبح بخیر حبیب. अरे میریزه. یی اون آوا مخریمه اشاش نگون. آخه داره میریزه. خیلی خوب هم تا میریزید. باور بابا این چاله مو کار در می. میریزه روزا زمین زمین نمی میریزه. یه بگم اش میام نه میریزید. مالی چیزه آه. کل زمستون می ماده دورم بعداشتم. فکر کنم, کنم. ده با ولاکونم چند تا ترک سن دارم. افه. من تنم هر جای پاکسازی بکنم قابلی نشده به صبح میگی به خیر هیپ صبح بعد آدم ولگانه درم بخوست آخر راست کدی باغن کی؟ عیال هیچ من بد داره خوب نقل دیه. کل کلی استخر هفته بار دیش دیدی؟ اسپارکم همیشه ما رو سوال مزی. دنیکی حلال زاده بخود داییشه. این کارند تیغانه سماتیست داره. دوست داری دیشیفت فری دی مرد؟ او لو معلومه که تر. چرا کلم پیدایی بابا شمی تیغه کجایی رو بیمیره؟ وای چی اصلا چی خاکی همی سر دخونیم؟ کن نه؟ چیزی بمانیسه؟ مرافیش نهی؟ هم بزرگیده بمانیسه یا نه؟ همه ای غذا هنه بخوردیم همی الان ما بیشی ماست فیدا بکنیم اها راست که من اب چی جنگل در جنگلیم یا جگه ها بدا با وای نیگر با... باش بامار <تصفح> آقای جان برف بود تو نسید موجود خطر نکبه شما اکر نشانه ی زفنیه هدر جان چند بار بگم مش مردگی زن امی کاره امن امر زنیم مردن. نتیجه زنده منیم آخ زنه جان چی کسی قدر. تو؟ قدر این سال وقت مرد خوب پیدا بکنیم بلا می سر چی مرد خوب؟ یعنی نخوایی مرد رو بی بی؟ چه من به مرد احتیاج دارم ها؟ من دست جاروی منم و فازله با بوی کنم ام. هر وقت ایتا مرد ترو تمیز کن رفتر زکنم را خوبه یا هیچ بویگم حس نکنه بیفتیم ای سالمه منه برسن آقایان؟ کاری نرم که شروع بگده <تصفيق> شمیه ابریم وای قضا خب فکر کلم که بدارید انمانی چیسته برد؟ ایمچه چی بیست همین <تصفيق> انمانی همینی که امن به اندازی نقط اولش از ویشتایی فاصله داریم آه. ببخشید اصلا نترسید میمانظور درد در ویشتایی که اصلا هم شوخی نده برد؟ هنوسته ما همانو بسته همین بیا بگیر لو پنی نمشی میشی خب خستم بگم کی همینوز بگم تمان رو نبوسه سوج بوردیم را وای خدا چیزی که خیام بگم انه که همون امثال باس مطمئن ببین که همین زخیره پرا بسته درسته گولی چک ای خدا تی په رو تا گولی چک بخاطر این که همین چیم جنگلی وای چه چیزی لازم داریم غذا افرین افرین وینو خدایی تیگلی کار کنه الان با ترک بو حسا خستی که مرا بگی؟ چی خستم تره بگم؟ بس بس رو جاختر شو میزوانی تو که زرنه باید چی بو؟ آه، یه چیزی خیلی ترسنکی جنگل دولون بدا بگدم خیلی نک. باید بشید چه مره نشان مده؟ انه کلیم که مسکوه گیره؟ خیلی خوب، جلسه تو بابا بست، باید بشیم هم، جنگلیان همی او چیزی باشدنک چی بو؟ Ay John, anda çıza… Vay, um! Vay me! Ay, mi! lırm m از این طرف هیچ وقت ممنی به آشه با پایوان از اون طرف وقت ممنی به آقا جنن چیسه؟ اگر؟ من تو اول همچنچیست ندارم می نظر که خیلی پیلنه یه عزیزم چی دراسیه برا؟ واح یعنی چی تنه بابا. کویشه کل؟ من ما ترسمار جن، من آمار نترسید یلو ان چی س؟ من چی بنم آقا زننگ ان ا ویر <تصفيق> خب، و خطم واضحه که این تو گوماره واش خیلیه اگر اسم بدن است کمتر ترس کدیم انا اسم من باغ متشم موغمتشم خیلی قشنگه می نظرم قشنگه از باغ متشم کمتر ترسم ترس وای باغ محتشمه بزرگ قدرتمند امی جان چی خای؟ فکر نکردم بدن است صحبت بکنه پیشوا ساخت زود باید با ایه پشش همی خویشان داری. برادرم در جامعه زبانی. از اون طرف باقی مونده شم. نگو ما رو. ای ولی من طور خودت وای. فقط این طرف وجود داره که بفهم انا من اسکیسه. من شاید نگاهی تبادم. حالا نگو نید. وای وای. شیسه چه بله. وای بر افت سکول بذار. با ه منم ف باغ م خودت بخستی بگی که با ما مثل عایتی پر اززم من رو نخوردمی پاجل ازگاه بخورد من شون در رو او طرف شی می جسر Ne güzel. Dikkat et sahiliydi. İyi Oh! Oh! Oh! Ah! Oh. Oh. Yo imam zaman. Wo, illa kurudu Au. Kardı çakal, ayasım mi اله! تلفن شما به لطه بدقیقت میباشد تلفن چیزه مر میجم بوشو الان نتنم پشت فرمانم ای خدا ای خدا جن بزرگست فوت بکن بستر فوت چی با بستیم با ای ای مامان ای وی کمک بگیرید ویرزه ایموش جکون جاوله وره ترفیسا ترفیسته فکره وقتی ما خواه بزمسته اید رو نیسته خیلی واشناک بخدا خوشنه پازی چرخ داشتیدی تو پابره بره بزید خیلی عجیب بو برر جان تو وزی تره بمرده مزه بیده آقا آخه جان دست بود خوب بوزه کن نصف جنگل از بین بوشو آغوز دارن خوشه دارن همه باطله بست ورخط بمیت تق عصب کوی غصب مارچن یعنی فشته میریم؟ اخه حقیقتا بخیر من ننم فقط آره دنم که اگر اتفاق با او مهتشر نشید هیچ اتفاقی در کافه نه گیدی رامش پرسنگید پرچین اصلا نم ترسناک نیست آقای دوزیست بلکه در وضعیتی سبسم ت زندگی خوب آه اشتبال دکن از اینجا ما خزندیم بابدن ول کن بخشیدی جنابالی او می نامارچن شما را با خدا کسی به این رزق من فضول هم، اما اتفاقیشی توقعشی میگه بنا بیش من تنم رمش قضیه شمره روشن کنم. دنیدی؟ دی، اونی تا زمانی بیابان بیا بود و الان با وسیع ویلای شعر که ویلا یه لوکس من چکو دیدی البته بجوز آپیس خالج که شما تشیف دریدی ها حالا نکنید اون قدم بد نیه. شما خواب زمستانی کنید. پس وسیع غزایم زخیره میکنیم. اما من غزایعجی کردم. همی. بله. هنه کی غارمانه؟ پولم به تا گولی چک عزیز شیسته خود مترسته را بگیر پسر چشمه هندست میدینم چقدر زمان بریتا عبیل وارست پره با دیلیسته هفته ده چهار روز اوه می یک هفته بسته امکان نره داره شما غذاها نجمع کنید منم بگم چوتا جمع کنید او طرف هم کی غذاها نهبه قاعده چقدر غذاها؟ اوه ایتا علمه کر فکرشم نتنی بکنی. می خود چیلیک نزن آقا جان اما نسنده جو قزا یا نه نخوری ولی می نظرنی هر مغز دار بو نمیگه اهل هرچی همین مردانه بگر اشتباه کنید می دوم الان خارش می گیفته زوتر گفتنده بس بینم بره بس بس او گفتی چی کویه با خارش وقتی با چیزی مشکوک با می دوم خارش گیره الانم تیک گل میدوم دیوانه کردن داره الان بفهمستی ور عزیز جان گوش بکن ارمش چیزی نیه که انجا بترسی آ خب ولی من ترسم وقت دلیل خیانت نگاه می پوشت تا ان به خاطر که تره تیسر تقدایی بوشایی بود رون آن چیزها جالب نیست تره دیر نبودست شمید دل نخای خوشمزه ترین غذاه کتابال نخوردهایی دو بخوری نه مرا زن نه بی تربیتی مفهم بی دل نخای ده باشید برا بفهمست وقتش که یکی شمارا نشان بدم کی بگو باید چیو چیو خیلی میزم بود آ به جادوینم چپسه چپس بس که کی سبزیامینی پوست کنی برش تخته تاخته کنی تا آب و درون کنی روغن افکونی اوناستر پنج تا هفته دقیقه نهایت 10 دقیقه آماده بس زن بالسلامتی هر چی جه کجانه وای بن خیلی خوشمزه درست خیلی خوشمزه است سلام ور اینام ور اشبش سنتر خوش بموئید ای بی دی نی مامان مامان مرا بی دی تر مرا ماست مسئله خدای استی دوم چه خبر خوب گوش بکن اگه یک نفر از خانواده آسی بیدیده تر واجز کنم بفرماسی همه حال خودند ریدی هر چی باباس می با که ملت ابن تو لاماش سب اقا اقاایتی اون مرا ایتا نگاه بکن هستی روولگ میدان نظر بعدرسی دو هزارمون بینه اگه خوره فوجه و تو مطمئن نگهیه ب موبی؟ آ ها چونه هاری ب گفت ف ذیل بابر د فباره نزن اط می کلکی زن داره اون که جاده جنبل نتنه بکنه مثل آب و سرتن آبوششه جوالان ش بادی الان با دیگه با زده و دلاره می بازن اقا ان چیزی بره؟ بنا گیدیشای بلند. قابل واره سفسی دختران گلسارا درون سرادیسش کردید. فترات دور باشد. دور باشد. با فرمان سید گلسر کویتی خیابان، گلوار گیلان. سلام من گلادی شارپم شمی رئیس از مجتمع مسکونی رمش سنتر. های. آرام. کنسرت <تصفح> سرد ببید. اون فقید ادمی زاده، حتی کی من از اون ترسیم، اون شمام میجا وحشت دریدی. پس اگر ایتا ادمی زاده شماره کافی در ازا کشی سر رو شماره ولیسید. اوشان عاشقه که قرار با اول ماه بایی الفانه هرست بکنی الان سه هفته بگذاشته بو تی بوشورای واش در بومی بره جان ده اکی خیبه ده اما فقط غذا ها نوسنیم بیشیم اصلا شرق غذا داریدی یا نه نیدهی مگر جبه دورم بو اوشان همیشه غذا داریدی همان خوریم تا زنده با منیم اشان زندگی کنید که خب بده شما نشان بدم قار خود گونی سیب ده اون دزدگایی که غذا سفارش ده انام صدای غذایی، انا می تا از هزاران غذایی که اوشن خریدی، اینم وسایل، می از هزاران وسیلی که اونا را غذا جابجا کنید، آدمان غذاهای آوریدی، غذاهای بریدی، منتقل کنید، غذاهای سواره بیدی، غذاهای دکونیدی، ان غذا داغ کنه، آن سرد کنه، انم انا مطمئنیم چیه؟ نه تشرش برا غذاهای ها کارم را خوشن عشقا به غذا نشان دیدی غذا انا به جایی غذا خوریدی بعد کی بخوردی داشن یاد دکه دا فکر واسی لاغه را کنی غذا غذا غذا غذا غذا خب فکر کنید داشن سیرایی داریدی بله بله ده نده چون از نظر آدمی هر هرچی غذا خوری بازم کمه واو. اوشن با چیزایی که نخورید چی کنید؟ محلومه ده دو کنید جبه میان؟ فقط جبه خاطره وسی امری سالم گوجی تر اوچین فوترکی امره خواب چوتایه سبگلل زاندیه چونه چگونه ای خانه بودوش انی تا زاکا کنی خوراکی نیه کی بخوری انیشتن خب چی می نظر چیه حق شي می پیله بره امره بو نه انشقالاً که دینید فقط پس منده یه ایپ چه سوار بکنید بدینید چیزاچی از جوان و غوتیان بیرونه یه شک نکنید اگر من را کمک بکنید بعد یک هفته اونقد قضا اجام کنیم که کی... که کی... که کی... ایتا خرص را سیره کنید ایتا زربال مسئله تن؟ این چه گفته کفته بازره اگه بزا باغم اگه بزنید میشیده هم بودا؟ آه چی جانیدان داری؟ مگل نگفتی امرو ولی سیم؟ نه، الان نه، فرار ای، بوزید، بوزید، دن دیوان دست عبدو کن بیشید که ما بید بای دومه ما نگرف، بای دومه ما نگرف فرار بکنید، ای خدا شما لعنت لانت بکنه ایشان چه شما یک شما را کنید، اگه صف بشیده بکشتر با امرو خباون بو سکن شمی، حال خوبه خوبیم، خوبیم یه بله بیده ای میرو دو بوتل شماره نو بست که نو بست راده من نخیید من اوشان دورور بیسی خب بابا من اونه با ترسنه ایمونم سلیت و ازی بیرون باورده مهم نیه مهم نیه؟ او ولی عمله خیلی مهمه بالا جاد بله کن ورن به فکر بکنید خیلی ارزشتشیه حتی نیه؟ آدم دوسته رو شده رو بی میده اوه میخلق اوف بده ای نخوده دیگر درازه بدن گوش بکن، ممکن ہے زندگی از تین نظر اب چوں مسخره بے۔ چی؟ ولی انا از طرف کل خانواده گم۔ اما هیچ چیزی از او طرف اون مرد لاوین رمش نخاین۔ صبر بکنید۔ این همین ای؟ بسید برای شما هنوز ووشکان خوردید؟ اگر بخورید تنید زمستانن چربیز خیره بکنید۔ بسیک بوم برای بعد فناوبت۔ باشد زکان باشید باغذیه فکر بکنید بعدن شمیام اورا صحبت کنم۔ شماره دینم؟ مرده شور اش شانسه بو شست شب خیر هدر شب شب شب شب لو شب شب پنی شب بخیر شب شب شب باکی شب بخیر شب شب شب فقط دوی سو روز تازه بستن باقی بخوش جانتی مار دوی سو هفتاد و سه شپس کلمن دشگاه هرموزه دشگاه تی باقتو ماما بستارگی ولی هنوز شیش روز باقیه میدست میپاشم هنوز زندیم هنوز چی چی ساختره؟ جمی مره هول بده اونتی خاطره خایه خواسته تواده اوتوبوسه زی دفعه بعد تره هول بده نکاس بگیر ها ها ها ها ها خودشه بگید بابا شمی جانه بدین چی صفحانه ای ببردم من بابشکا منم برگردشکا بیایی بیبینم گی راحتایی. ترکی لان کیو بیس لککتی خوش. مجددم اج میکونن صرفم آش. نه به اس دیگهش وبد تریش تری. مش کوفتش. آه مزه <متصف> دهی. خدا که خوشمزه بو کلیم هم خاصیت دارید. خیلی خوشمزه. آی بابا من موافقم به نظر خوشمزه ای <تصفيق> تو یکی کنی ما مایا تا علاف کنی کمک بکنم گوش بکن و تو دیروزیش در مورد تو گروه گفتی که حرف خ امارا شروع واستید میدونم هنوز سر یاده خانوادی ها ها ها هم فرین هون هون مرافق شاییه ای تا زمانی من همه چی داشتیم ایتا خانه پر از عشق کنترل از رای دورم بو ولی تا حادثه درون می منظور برفا اشتاده سایی همه تازبیم بو شو اخی کی که زندگی پداشتیزا دیگه دیگه با جانره من بیمیره او زخان منداره اخو اکبرزر خیلی سختی بکشه برفا اشتاده سیفر تمام خانهان بام فکرده سابو خیلی خوب ده اصلا تی تخصیر نیه من ده باباشم شون درم شمان خوش ببینیم میکار بینیش به من فکر نکنید شمی آشنه ایجا فیلی حوش حالا وستا خواه براه یه عرجی عرجی تو تنیای بیسی تنستیم کیتی سفته لاکزیریت قلب مهربان نه بیدنم اشکال نره تره دخنمم و ورن نه عیبی نره خوبه همی بیتره کار ده خیلی میره کفک بکنیم بفندقه نبیدا بکنم پس چکی ترا کمک کنم؟ ولی اول و انا ترا نشان بدم شیرینی داری نه؟ مامان مامانچا ولی از شیرینی عشقله دیگه اشخال دیگو خیلی خوب خیلی خوب ترش نکن من دارم که یه شیرینی پیدا بکنیم دوتا کشدن کارید که اشناوری دیایه فکر کنم ها خانه ببه هونه بیده ای؟ خوشمزه تر شیرینی دنیا کشمشی، خامی، شکولاتی، فند دازم بهتر نیب. همه تا تیشینه. هم تیشینه. کویا چه بس. تی های جوان دوست دارم ولی اذون نیب. مگه نگفتی تیشینه. تیشینه. ولی در صورتی که من بتیم استینه، جیمینا خشدون درون استفاده بکنی. من تو. بگفتی؟ من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من سفر برو کن چنت باقیه هنوز مش بگم ببیننمونن اگه میشینین نصف بزنید طرف شخانه ای ان یارو که میام بالا نخاله بای انا بوگونای ها تیپرتور بکشته بو بهتر بو بزن بشیم خیلی کار داریم چیزی که اما لازم داری میتسن جا بیا بیا ورتی ای تا شوکول دیوانه و ها رو خرکله دو زاری دکفته یالا جانم همی جان ولی می نظر خرگوشم باشینید روشن خیلی ناز عکید بکدین نه خرگوش او. اول بسی تیموی پریشانه کنم. آها، سافرس کم ترجم بدن. بستره. ایبچه فیلی واسی آها، اها فقره هاجاغ بزرگ همه مجور نشتی بره. خیلی خوب. الان خیم خشمتی چومانه رو درون بیدیرم. ای من تنم بخشت نقص دابط بگنم سیر بیا همین. تره جانتی و جوان ما رو تمرکز بکن تنی؟ به کشم. Hıh. Hami. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. Hıh. من خرکله‌یم خمیری شم دازه مرا وجه اگه مرا دست بزنید هره گرید حل بکنی؟ تی پشت‌تار درم تو میپوشی؟ اوه هست ازاری گیرم لا لا لا لا لا لا شلپ نه بخورده ایمه بگر تو کم بدن تره چه خوانه برا؟ همه چی هم نعمانه ورن تو باگر؟ همه چی هم نعمانه دی؟ ما تر اسمت دل بویا مل کن همه بس این بار اشکار داماسه بی کیف مرام میبردرد او با که هم. آو با که با که سلام چندشی توامان بکنده میال به هم بکرد ایشی ها ها با وای عالم. آه همی تو ماره ای بسر ای تو مرم با ترسنه نزدیک ما کتابم کتاب هم رفکوی هم تیستاره میان هستران او کبودیان ناراحت نبو. زود خواب به تا خراش بیشتر نیه بله میسه. سر او نده بیدین مال جان ایت شکول هم بکود فکر کنم هار بود تازه ایت دوزیست چندش لختم بو. هم بود خب زکن بیشید خانه تلویزیون روشنه کنید ایتا شیدینی هم بخوریدشون و غنو کنید ببخشید جانیز درست پیشرفستم اون شکول هار بود او بهتر درازه نیدی اگه ایت مریضی مصری همه تنه بگیره چی؟ انجک و جانوران ناقل بیماری دی همه چیم هم نابوده کنیدی انقضیه اصلا شوخی بردارنیه خواه من دل بشم ترسم ای پله بسوچه باشه بوشتی پله فرست منم نگرانه از می شونه می آرامشم وووی خدا <تصفيق> خیلی خوابشلاغه نکنید همه تنه فرسه عجبه تیشی نپنی خیلیستی جوانی بدینی بخوری زکم بخوری شیمی ما خش قربان. ها خورجان تی سرتم گزگز کنه. خطیقاً به ما بجیرده آدمانه بیدیه چوتو فعالیدی؟ کلخو کبودو بدیدی هیفچه انا وخور بیدین چی ایست آخر هگر انا بخوری تابستان شماره شمره پند قدرون تمام ها بی اه اه که گفته اونا اونسانی کافین تره خوب نیه درد درده بخوری تو خب ام فقط نمونه کار بود بیشیم که بتر کنیم decenni me mi varet uman چک کوچانه وانه خنده من سن بلسن خدا می یار برسان کلالی جانم کلالی جانم کلالی من کیچی حیرانم کلالی کلالی جانم کلالی من کتی حیرانم کلالی زنه. نه نه تنی زاقا چی با بسته؟ بد وقت میچهره بیدیم می روزی نگفته دبی مگه نگفتم کسی حق نره خیابان دورون توقف بکنه؟ او! تیمی بوش او بیلچه یه باور اهزو باش <تصفح> <تصفح> میکم تارید سپرلمنگ الان خفشم امی چراق خان خاموشه مارجان بلاخره می پیمانه ام پر بست بومم و دنیا تیویجه ان چی کودنگره؟ انم اف باطله بست بیر شاره شما انده خیلی دوره بستید زود باید بیشیم زخن آواز بوم نزدیک با بکفتی سه شما چیمی سر خوردن داریدی با تشکر از سرورن گرامی وارانی که از راق دور و نزدیک تشریف باوردند موسینتی دست خوربانون گولبانی پشتفانید بایدم بیم این بالم باگی این می فشار کفدن داره. ایمی قلب با... الان چی تنم دست بزنم ترگم نه بیده اید هنه واسی ایت جانوار کش خواستم که اشانه قبل ازن که ان همه صدمه بیدینید بکشیم هلا رضا آها، زاکان باید دستگیری بگیرید. آها، هول بدن، هول بدن. آه. واو، میشل دخشی! چه خوشت؟ چه خوشت؟ دیر کنم، دیر کنم، ترکنن کنم دیر نفر حیوانات هیوانات امره مشکل در مره زنگ بده بود خیلی خب راه هل الان چی میبریسه ایت چوب پیله بزنید مشکل حل کنم تا الان کویه ایسابی خبر دهن ایت گابی گوزفندی ان خنم ماشی این تجا بیشتر هیوان بکشته هلس نخور خخورجان سکت کنیه من آغوز ده رجاریش مرم هیوانگوشی که دمی دست کاره از فرداد ای چیچنی هم نتنه پر بزنه <تصفح> <تصفح> حیوان نامیسه تدل فیز مارسو پیالیت ویدینن تی اسم منطقه سربوش هست اوم دو سال پی سال تو که جنه از بگیری فکر کنم با بمرده نه بابا رسگی دو ما از معاون اوله مرده شرخنه هم فقط خوره به ری میری پزه خنم چه زباش زباش اگر زوبش. از نفیل شاوید بکنید تنیدی بدینیدی که به زورت متناوب نفس کشنده من واقعا دوست نرم از <laughs> اه! آه! آه! اه! اه! بخوش آنه بخوش شمین عزیزان هرزین شنلق خب بیدنیم کیم را طرف هم موش، خرپوش راسو، شکول، راکون، توزی خزندی هم نه، خزنده تکرم نمکارم شمی جن ببیرم خدایی دمت کرم مخکا بکود یشنه تو دکیسی؟ کسی <تصفح> آقا جن خواستم باگم تره افتخار کنم همه که این افتخار آتیم <تصفح> <تصفح> ولی اما نبستیم این راه نمای از یاد بباریم عرجیم <تصفح> آرژی بیا بیشنیم خیمی چطور نشان بدیم باشه به با بیا من نفس نفس عجب تیمی میدارم بابا شماره دست خوش جغلن بیا از در طرف بوده بیا تر بیخش تی چاز خانه این قسمات هم مخصوصی تا چه کدیم این میشی نه؟ اهان همه تا عشان همانه که قبلا داشتی هر جای مگو نه؟ عشان <تصفح> از چی؟ یعنی که من قبلا داشتیم خیلی سرتر. ترم که فنالی من بخورم تا بخور ممنونم اهم آه. <تصفح> امی کلو پشتی نیه؟ اه دل ازم نیه در سار بخوصی آر جی حقیقت که؟ اه هم یه آر جی آیا بیدین امان تلویزون را تبدیم منم سیمان ها وصله کده هم آر جی اما ایتا آنم کانال داریم تا می آقا اون صده بیگیر وای ایتا کنترول اه هم این عالی خیلی عالی می توجه میتوجه به بهامه برنامه جلب کنیم خجالت بکش امان ترمی خانواده درون راه بدهیم ولی تو عمل گول بزه ای ما قلبم دام با تو تو دیگه دیگه کردی واقع ب بب وقتی دو نزی دو کیز داری به خاطر اندگی تو واقعای دو کیزه اشغلی حس بلند در بزن من کیسه زباله؟ من کیسه زباله؟ شره برم پنج انگشت از تلویزیون هم باث دکتر برکور همدیگه رو تدعوا دیدی فلوورجم من کنه وای وای وای چه کدن اندری بره؟ تو خیلی وابست و بوستی جی نه غذای بودست خرس سه رکن غذای بودوست خرس سه رکن آه غذای چی بوست؟ غذای چی بوست؟ <تصال> <تصال> <تصال> <تصفيق> ویر چه گدان داری؟ انشاءالله بقدر خود خجاست. نه دل نکنه خیمن باشم. خوبه تو باشو منم به شرف بودی صاحب هست. چی؟ چرا آخری؟ هر؟ اما آدمان عصبانی بکدیم. اما دوست نریم و خلق بشم، من سن پس من آشنا پستم، اونشان امر نگوچیدی. خذ با جلسه. ای اختی کوی کله درون چرا حرف بود رو نشه. اما نشنا لازم داریم. نه نریم. نتن یاشن باباری şirao, kolum tene, veda başam, veda başam, masimiy var cevabını. Ah. Ah. Ha. ha, ha, ver, sakieti sana ah. davet biciğim, biyam idiom var. Kim? na arj, na. با گفتم که ای دفعه ده گل ده خوش کنم نکن ننم ده چی فتنه تیستره میانداری ولی توام ملک ده خرش بگفته ای دفعه ده حرفو گوش کنم و میموق ایتا بادره بازی آقا؟ اه هم از که بازیه اه؟ جان انا بازی بازی بازی بازی بازی بازی ya baba ben böyle zikay. Ya baba deremdi ki. Vay, ey marasız bazi, ey darde dalaca bazi. Ben akıllı varca varım. Ver, kaza ana havaya mı sarı galma vay vay vay vay vay vay vay vay tamam aga saya çırtakudir ye bir gir öle koş ne gazı ne bu de Miha al kubu, miha al Ver, zanjira morsi Bazı ya ağa Tiyat abad, yeme kuni, tiyat abad, yeme kuni Chips Aşk Aşk Aşk Bolendiye kashangam Ake من گفتم برو براستون جی را مرسين آخ ها نه قبل ساعت 9 Altyınızla zıvad. Hay meykalı mı? Ha ha ha! Ya! Ben tiyak nasıl bir gün o غذاهان از, از چی بگفتی؟ بلی؟ چی تو آخه؟ اونا جا وارسی چی؟ باز غذاهان ببردم پس بده با اونی صاحب چی؟ امان هر روز صبح تو شب سگ من اصلا جمع بده ایم غذا جمع کودیم بعد تو ترا خورم خورم ببردی پس بده ای؟ وایش. واقعاً که و تو چی بکودی؟ کدی؟ امون داره تنیه پره کدی بیم پر از اشغال چیری تو؟ یعنی قضایی که همان به امیره بجمع کدیم اشغال بودی غذا خوب بود؟ امیش این فقط خار داره؟ رو روش تیموزون اون روشه عرجی فقط امیجا سو استفاده کدن داره وین خجالت بکش عرجی این کارو نکنه شما واسه میخرفا قبول بکدید ما خیلی مشکو وقتی آن نزدیکم هم بدونم خارش کرده. آقا خارش کرده واسی حمام نکه ما را گرسنگی بادی. دا من ان که دانم تی خارش است سادت. خسادت چیگی آخه. آها اون همچنین فکریمیه اینده ولی تو امید دزپایی دوستند داری. بد خارشی به نسل انگرازاتو لعیرم ولی شما چیمی خاله یکشتن داریدی. اگر آشن نسبتیار فان لگوش بکنند یک هفته ی آشن کلاسته تیله چون که آشن اهما خودت باوری تو نه فقط با فقط تیم منفاتی. <تصفح> من احمق نیم بیتر بیات خیلی خوب، می منظور انو بود می منظور نا آگاه بود. را از او طرف از اقن او طرف بایی، دنی که من منظوری نشتم نه، اخرا نکوشید لطفا. استله، عزی، همی من منظوری نشتم من صورت نشتم دسته بگم حبی من احمق نیم نشید خواهش کنم بیا یاری بدا می دیل دیل داری بدا بیا مره یاری بی بدن می دیل دیل داری بدن کی زندگی هم عشقه من زندگی هم عشقه ای دنیا غم می همدمه ای دنیا غم می همدمه من یعنی چجور هم در من شب بخیر امار جی انی چوجور امزرها ترمی وار کانزر ما کامل بستر چی دین دینه تر دل خوشی نور تو پای نشی تو پای هر سباز بگفتنم توشی با دختران همه دنه نز نزی بسرکه تو رکنید اوزهی کنید سر تر بزی <تصفيق> ترکنم ترکنم توی تایفا ترکنم تو ماما بوز؟ بله خانم چند ایتای من ای؟ ان پیل دانه یکم ان دستگاه که که غیر قانونی خخور هر مالکزم نفرد که به جوزیک تری افراد اصلا مرا اهمیت نره که غیرقانونیه من ادازگاه خیم ای بچهشم میتست کاره هیچ حیوانی جان سالم به در نبوره وای ای جنیا خدایمون من چی بکودم؟ نباستی اون غذا پس بده نه؟ چی؟ بگفتم نباستی اون غذاانه باورده بوم، با خستیم اشانه وگردنم به اون جای اول من خستیم درست کار باب. چون می شخصیت اطویه، بازی چیزن می لکه درون نه که خودم نیم اما تو بسر خوب و دیوانو و نترسی بی نظر بینظر اشان حق داریدی، فکر کلا من فقط ایب چی حسودم آه. آه. ویر قبول بکن تو نبست مره حسادت بکنی برر تی بست، آیا خیلی خوبه هر کاری هستی دست تی خانواده انجام دی. الان بهترین کس اوشانه رو توی رستی تی دوم چی توی؟ می سر گتی دوم آرفا گوش بکن، می دوم گتی سر آرفا گوش بکن خلاصه میسر سر به می دوم پنالتی زهند داره کم تو الان و مسئول ببی تو ننی آیا چی خبره؟ خوب تو که دنی پست بکن مشکل ببین مشکلنه نگاه بکن گوشت اندارم بس آها یچو سوار بکن ها ها خودت آ ببنم یه بابا برام بگو آها بابا هر حندره سر بنه تر با خدا در دیوار زخمی نکنیه تماشاگر تماشاگر آ ارجی ان چیسه وای او ها اه... اون ایتا لیست از وسایی لیستی که تو به چنگده ای حیل قطع واقعا ترد دست خوش بله خوش بمو دنی چیه من ایتا جایش که تا تی دیل بخوای قضا داره پور تن یک شبه همه پس بگیریم بزن پیشیم دی. کوه بابیشیم او خانه دارم چه بکودی اخ یه عبیسا بخواستی ایتا سایش کچک تر فگیریده جهتی مارو سه کنب زکان چیزی که ورن خیلی بگه اینه که اخه چطور بگم از چی کلمه استفاده بکنم ما شرماندی هم اخه بیدنه کشن گیرم خیلی خوب گوش بگیرید بیدونید چی کم نقشه انه بگیرید اخوانه درون نیفچه تلنه ها. ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه آیا آیا آیا آیا اه... اه... اه... ایتا آیا پیل دانه؟ تو امامه با؟ نه، ایتا آلم نور غرمزم کار بنایم تو چرا زرده کدی؟ میزانی یا نه؟ با یه نظرمی هواس فرتم از فلی بگفتم همه جاتلیه بخشیدیم می که خرابه کردم باشم تو میزا کنم خیلی خب اشان امائی من بابا ماشینم تو کفشلنگه ای کفشلنگه ای چایه؟ خب تو تنیا قشنگه اوتو ببید ایب چه جدی بگیرید تازه من ماشینم ماشین همیشه خودمم هم. نقشه ستا مرحله داره محلی اول نوره اوچینیم محلی دوم شیم بودرون محلی سوم قزانه دوزنیم. آقا ای زندن لگان منه او بلندی دیواره چی تو بشیم بودرون اخی او قلاده امی کلیده انقلا در بازه کنه اون وقت من تنین بیشیم بودونم آخره فکر بگودی اون دو دستی اونا تره تقدیم کنه من نه بله سر تره تقدیم کنه من؟ اه ها استلاجم. او پیچم مخزنی و غلطی فگیری و استفاده از میگنده بو نه غیر قمیشم. همون ازغیی کنم نفامستم چه گفتن داری؟ بهتره تیچ رومانه خوب بازه کنی انگار تو ننی که منی تا راسویم و فاضله با بیا کنه. در ظاهر بله ولی وقتی تی باطن را دقت کنم ایتا پیچه شال مکار دینم فقط وسی تی ظاهره چکنی قیچی قیچی؟ نه نه نه نه نه خاک زغال خاک زغال چه خوش بکننده رو بگویه؟ چوبم اگه جرعت داری بازن <متصفيق> ایچی با منسته تمام خانمان اقیان لولو فدید حلو تحویل بگیرید چقدر نصب ببستی بلا میسته حیلی حلو ببستی راستگی عجب چی تم بیتنی بکدید مره آیاجا پانگی چ کودی خده برسنید، وقت شان زخه او او نه نی به اولامسبونه ا تو نتنم نابوده کنم به منشی مییم رجی بکنم؟ Javuca ya Hami, Hami, küçük Uşu, Uşu, Uşu, Uşu, Uşu, Uşu, بو گفتم اشکالی من هم گفتم اشکالی که برکت کت خداه فشانی آجی چی بودست همه چی میزنه هاها بیافته خ خ نبیگیر بیه اترف اترف ها تو بیانو دنبال ها هست بو شو بزیر ها بیبیگیرن ها بو شو حسن بیاره. آهان، بیه، بیه، به طرف، یک چرش اندر، آهان، بیه، بیه، آهان، بوشیانه رو، بگیر، امد از خوش. زکن، مرحله دوم. فکر کنم مرحله دوم و درون میریم. خیلی عالیه. خیلی خوبکار، دی نابطه. خدا بکنه زودتوره با انشا پسن. صدا، دوربین، حرکت. ایه ایه. یکی که هست تور نکم یه تو کیسی تو پیچه تو پیچه ای می منظور انه که من پیچه ایم اها بفهمستم چخه حیوان چخه می صاحبه اصلا خوشنه یه ولگردن حرف بزنم میام روی؟ بگی که با ما قلده یا یه چی قشنگ قلده ای داری؟ تا نمیتون نگاه نه نه نه نزدیک نوامون من میام را چرخ بزنم اچو شما چرکو چلنید امن چرکی؟ اه. امن چرکی؟ یه من اصلا وضعیت که کی هرکی مرایی تن نگاه کنه و انه حال به هم خوره خسته بستم چون اونش را فکر کنن من چرکم بده ایچی تره باگم من کی مرا واسین بوسین نکودم که عروسک بابم تو اگر بو بدی تیمار جن تره همم ولی من چی مرا چوب پام بزنن اگه تره حالی بود تید دهنه ها... ساکت تا الان هیچ کس میام را اتوگ برزه بود <متصف> ان خیلی عجیب <مره> <متصف> او دنی چوی سایه که فکر کنم مرم خوش با ما بیا آیا بینم که خواه رادا کفید تو قدرتمندی ایت خاص و رویایی داری او تیم از او چی بود؟ من شهلاییه شهلاییه آها برق زنه برق برقم زنه؟ رسگی؟ آقا آیا خو قسمتیه ای که میعواز پرتباسو الا کفشلنگ و ماشی بو شوید بودرو یا نه خواه تو اسمم داری خوشتی؟ بله ایت اسم شرقی دارم آخه می نشد پرشیانه معرفی کنم مجید پلنگپور چومچایی او چه اسم سختی تنم تر مجید دخنه او خانمان قیاد بفرمایید به صرف شام Ha! Gel ekmekzakım. Fakat ajalebuk. Keb gınaqşi. Hami, Ah, ah, bu. Ne demişse? Aa! Un bu? Hami اخ خلاهی بمیرم برات آه آه آه خیلی خوب خیلی خوب به خیلی بگذاشت ادامه بدید بیه مامان جن بگیر بلا بلا. بگیر آها چگی جای در بجار سر کله عشق تو دیوانه ترینم بی بفا خرمن کوک نزن لا مصاب کومباین بزن بابا با. تازه تازه امثال بام پشت سرم انجیر کفتک وجاست بیا بریم ترا نشون بدم او نه بس حسن منچاست خادم بگم آفرین آفرین شما ردس خوش اون چی سورا اون چیزی که آدمانا صبح جا ویری زنه ها کویا Ah, ah, du rossy, du rossy اقرده واسی بشید بیرون نه بدون چپس نه چی؟ لو پنی بشید سمتی تلویزیون هده تیه هواس خوب جمع کن باشد آرچه بسکر کوشید تو مخلص بگی، افت و مخلص بگی، آن جای داشت کافی لباس بیادی. وینسنت چاله تیماری کجاست؟ وینسنت؟ برایشی دوباره. وینسنت کیست؟ آره، وینسنتی چجور به دکاری بهتر خرسه. می‌مادرنی که من ترا خیلی به دکارم. آها، از میدهاند جیبیشته. <تصح> خرسی در <ده> کار نیه می‌چوم <تصح> تا <تصح> رد <مت> استو پالامه. هدر. وای یه قدر بله می سر گوش میکن ایت سفید موش پر لکان سر بکشتم زود بیایی نگره نبو فکر با کودم بمردی انا تیجا ید بگیفتا ما آخرجم تیجا نره منگش بیست آباده خسی پشت بان بانیده آجا خوب نیه، بیتر زود باشیم چی؟ یا نه تو آخا بس صده را لازم و اون نه، اون صدیم اون صدیم،, اون صدیم. چرا چردگی زیادیم، اون صدیم اه، گوش میکن، من اون داشکای قضای وصیفه نمیتا خرسه و الان فقط ها چپسه کم دارم اگر فنده مو مرن کوشه، ما فهمستی؟ اصلا ویلکون میدومم نی؟ ویلکون ها؟ Şimdi başla. Ama başla. Eselâ, kuyu işi. Eselâ, nüshu. Eselâ. Bide indi, hadi, Aha, من با تره عذیت نکنه نه بلا می سر من فقط تیق شنگیه دینم هیچ بویی حس نکنم تید دو ماقم پس تعدیل بودوید با طرف و در بودوید بودوید بودوید آزاد طرف بابا <mimHHH> مهمن <qu leveling> <s động> <mim68> İki kebomu! Muvazı bu bu! Anam dışı! Oh. <pishim. gülme> beydala! Beydala! Aha budu! Zeni <gülme> <gülme> temiz bu! Bakheir, kazandı! <tüks> ah! Oy kuda! Bırakırı bir gifdim şamırı! Ha <gülme> ha! و فا چه کنی؟ به خاطر که تو وعیتی اشان باید میخواید برو. ای خدا! آن چی بلایی بود؟ آنکه شور نبودم. ما، آن هیونات در کمال انسانیت فشاده بود. نه، نه خیلی انسانیت بخارج بدی هر چی غیر انسانی تر بهتر. فقط بی زمت کارت به کارت بگویی، ایت تک دنیم را چی به لحیم ای باشم من نخوایم بیمیرم آقا جان واقعا نخوایم نگران نبوزه ای همه چی میزنه چیز؟ اعتوه. تو رس گفتی وی همان واسه تی حرفا نگوش بدا بیم خیلی شرمنده نه دنستم نباسه نا اعتماد بکنیم اماش می میتخصیره بسی بیشتر فکر بکده وینسنت خب من خستم بایم بیزیر که تره بکشم ولی صبر بکدم تا نمایی شفندرم و واسی بگم که چیز جالبی تماشا بکدم این افر خود خواهیه بیدم که تا به حل همچین چیزی نیده بوم عرشی واقعا حرف نشته تو قضا هنه فاگفتی و اوشنه بچنگ داری همه یه انکارانا بکودی تا مرامان منستن زندگی بکنی تا هر چی تی دل بخوایی بداری ام من ها الانشم دارم چی؟ اوشن شوخی کنی تو خودت بکفتی که خانواده یک نفریه درست که هم. و توی افرادی امرمانستن زنده مانید و یک ده از بین شید انا گیده راو بقا زندگی هنه می حرف باور بکن می تو اصلا به اوشن احتیاجی نری در حقیقت دارم ولن اوشن به من احتیاج داریدی پس من انا لازم دارم آچه بای، اون چه نه؟ مامان جام های، خاکی سواری سه لحظواری، خوبه؟ یه، yeah, بزن به چک، نه مرده بیماره فرم نه اشتباه نکنن عملیات نجاته، خواهیم شما نه نجات, نجات بدن این بالایی بلایی تیستر برم که خودت بگی احسن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 روشن مقصد خود را مشخص کنید. خانه، امروز بابار خانه. مقصد انتخاب شد، دور بزنید. ای پچش، دورم زنی. هنی، تو باز دکم باید بدرنگ کردم. هوا بالانی، یسرانه و شل. آیا شما خاص حال بیاییم؟ چی میگوییم زکا؟ میدانم چکشو بزنم می دونم چی به. خیلی ممنون. اس مایه بودرون زفلاش با ما چفت آزی والله بودرون کنم بعد اون همه نامردی اما اون واگرده است برادر اذا خزم خرابه آها راست گه یه ما صلیبتون اندی کو دیندیمه راست گه ده حواس پرتبه ماشین واگرده هم <تصفح> ما تا ترتیب شما رو گفتن داره من خای عمر کمک بکنه ی تو ویروس ما بودن دی بی همین میدم خارش کنه میدم خارش کنه اما الان ده خارش نخونه سوتار بگوت خانه خراس تی خانه بود کوچکم هرتي مرتخانم ترى بعد از ترفه خانه رو تو لطفاً به چپ بپیچید اما وسنگ ان بگیریم زدیدین اوای Mars'e Rekordumuz Ali! Hay! Gel hadi sala شما به مقصد خود رسیدید. کی پاید می دهن باور بیرون. بیشیم زخن. ترموزدسی او... سر بینیشتم. باید. باشو باشو باشو باشو. شمی زخنه باوردیت. هنده می پرکنخیکیه. ممی برگاهم بیرین دارم بره بره کمانزه کمانزه شما را نیشون بلید بشه این تو کنمه بشه دو جنگل لانتی دو جنگل لانتی درور آی من راه دو هم باشد لو مواسط ببین بشه دو طرف خیلی خواب ورد، زکن از ای بابر، من رو نمشغول کنم چی را بخورده ای؟ کوشه اون میدون بله، او از تیخانه بعده ما رقوبت من هم خاکارکو دن همه خان به بعده کاری بکنیم وقت نریم همه؟ اه، ز؟ ماما اینجا یه کوش داره. راست گفتی. اله همسته هر چی بخوری، بازم کمه اف جان کوشش ارا هی آیان می بو بو شوش سلام اجز جان شوفلم باخو مانخو اخ نا اشتم ابوس اخا ینی ما غایم بودنم شما دونه فر خزر نت کی چی چی بسرونه دی امی سر فهمم خوب چی است اپلیکی ملای عیب نیتیری فنه فنه حقله گران ابو گدی مردل نووس خانه درون پسو خق شمی اون سر اوندو قد minimal ‫نموقعید کановلی کی کوشیز کام اهم‌ایی نشده ندارم jun Mart? خب الله کم با بدا هم دفع وی کنم رده عبشه اعتadem量 را نگم وقت زیاده باشم کوکی ایتاам بخورم ای بابا یεις سخی اخوش ، ایه بالاقری ما میلو روسی بخیل راحت بخورده. کت بکت بکت دیداتا را جانو کجبه بازنیا یه کت بکت ایتاا Mannes mi kart tamam Visa'yı da Bir alan aşağı Ayy Bayna canlımanla یامی یا یا تو نه و غیب است. آره داد مان. فرزاد جوبلان وسیم. هرگز سیلک هوازن نکنم. فدرت بخورد. اگه میل داری فدر مرا. آها راسته کنم میشیم. ما افیویش بوست سواد باخ. الان با فهمستی چه اشتباهی بکو دی جناب سروان، اکلام مردایم بی سوابه مرا بافرو. بچه به نمی مور می تقصیر نیه. بس مارجان، تی برادر داده درون بینی تی خانه حیات میان پیدا با می تخصیمیه نه تنی بردست گیره کنی من رئیس حیلیت خودیره یه رماش سنترم تکا نخور بیاری کن بگیرن کل کبیسه بگوشیده نه امان خم رشت بم بشم رشت بامام طالن گرود می طالب برگشت ترمازه ترمازه سلطان! سلطان! جونبل غربان! تی او حیکل غربان؟ بیا مجید جان! پس جنگل جنگل گفتی هم با ها مرا خوش بما. بیا بیشیم آقایی. آه، دنی چیه ارجی؟ اگر از اول بگفتی بیغزانه بسیفت ایت خرسه؟ خب امنم تره کومک کدیمی؟ اه. حقیقت گی؟ آها خب این کاری که خانواده یک کنیدی همدیگه همدیگر هوای داری؟ خب من تاس همشین چیزی نشتم دنن ولی باور بکن که خانواده تنها به سمت زندگی خوبه کاش که انا زودتر بگفتی بی خب اما هر دو اشتماع بکنیم اصلا چی گی؟ خیلی از امن بی بی؟ <تصفيق> اخ بیا تره کشن گیرم خود جنره ای تو خیلی اه اه اه با حالی بیت به خانواده خوش بموییم چقلن چقلن صبر بکنید فقط دویستو شستو افروز دازم نستم بمانسته پس قضایی چی بکنیم من بگم من بگم من بگم, بگم جنی چی مار من بگم باشم تو بکن من داره تنه یه پره کدم ها؟ آلب بیدید خب عزیزان آن امیشیم تمامه بود. ایشاندی ایشاندی ایشاندی ای ای ایشاندی ای ای ایشاندی ای ای ایشاندی ای ای ایشاندی ای ای دلهایی تیماره بیمیره نیدیل قراره بگیره اما اترم سرمه چی مشکم برمه براد خوبتارمه چین بیرون نارمه اگر بیرون نارمه دهت عروس گیرمه آخه جنگل که جنگل جنگل که جنگل